به نام خداوند جان و خرد سلام بر شما همراهان همیشگی این برنامه با افسانی دیگر از مجموع برنامهٔ هزار افسان امشب با شماییم ادبیات شفاهی مردمان سرزمین های مختلف بسیار جذابه برای نقل کردن امیدواریم که افثانه امشب هم مورد توجه شما قرار بگیره. کچل دم در خونش که رسید چشش به یه انگوشتری زیبا و نگیندار افتاد لحظه ایستاد و به انگوشتری خیره شد بعد آروم خم شد و انگشتر رو از روی زمین برداشت و اونو کرد به انگشتش. یه دفعه سه سیاه زنگی در مقابل کچل ظاهر شدند کچل فریاد زد بنا بر خدا اینا دیگه کیان سه سیاه زنگی یک صدا گفتن ما غلام حضرت سلیمونیم هر کسی این انگشتر رو به انگشتش بکنه وقت اون چه شریدید بخشی بود از افسانه ایرانی انگشتر حضرت سلیمون برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایران گردآوری جمیله فرهانی امیدواریم که امشب این افسانه زیبا رو بشنوید و لذت ببرید. روزی روزگاری پسر کچلی به همراه مادرش زندگی میکرد. کچل کارش خارکنی بود. از صبح میرفت صحرا غروب، با یه پشت خار میومد. اونو توی بازار میفروخت و خرج معاش خودش رو می کرد مقداری هم پس انداز می کرد برای روز مبادا اون روز کچل افثانه ما مثل هر روز پشت خارش رو فروخته بود و داشت به خونه برمیگشت که صدایی توجهش رو به خودش جلب کرد بیا بیا که اگه بخری پشیمونی اگه نخری بازم پشیمونی کچل که کنجکاف شده بود جلو رفت تا ببینید چیه وقتی جلو رفت دید صندوق کوچیکی روی سر مردی قرار داره کچل گفت امو امو این صندوق چنده مرد صندوقدار نگاهی به کچل انداخت و گفت پنج قران ناقابل پنج قران کچل پوست خندی زد و گفت پنج قران ناقابل امو نفست از جای گرم میاده من شش ماه طول کشیده تا این پنج قران به قول شما ناقابل رو جمع کردم مرد صندوق دار که مطمئن شده بود کچل پنج قران رو داره شروع کرد به بازار گرمی و گفت این صندوق بیشتر از اینا میارزه اگه بخری پشیمون میشی اگه بازم نخری پشیمونی ولی بهتره بخری پنج قران که چیزی نیست پسر جون خلاصه اونقدر گفت و گفت تا کچل پنج قرونی رو که ماها جمع کرده بود به مرغ داد و صندوق رو ازش گرفت و خوشحال به طرف خونه برافت روزی از ماجرای خریدن صندوق گذشت روزی مادر کچل به صندوق که روی تاقچه گذاشته شده بود نزدیک شده و گفت پسر جون نگفته این صندوق رو برای چی خریدی؟ اصلا خالیه یا چیزی توشه ها؟ کچل گفت مادر من خودم هم نمیدنم چیزی توش هست یا نه بهتر درش رو باز کنیم و ببینیم توی اون چیه مادر کچل با نگرانی گفت آه، پسر جون مواثب باش. احتیاط کن شاید چیز خطرناکی توش باشه کچل خنده ای کرد و گفت <تصفيق> چیز خطرناک مثلا چی؟ یه مار بزرگ یه غول <تصفيق> مادر گفت نمیدونم فقط با احتیاط درش رو باز کن کچل آروم و به تأکید مادرش در صندوق رو باز کرد وقتی نگاه کرد دید یه بچه مار کوچیک توی صندوق خوابیده مادر کچل فریاد زد وای خدا بچم الان این مار به رو میخوره کچل خندید و گفت مادر سر صدا نکن اون فقط یه بچه مار کوچی که ترس نداره در این موقع مار از خواب بیدار شد و به زبون در اومد و گفت ای کچل من گرستم میخداری قضا به من بده بخورم اون وقت برات همه چیز رو تعریف میکنم کچل هم بدون معطلی بلند شد و رفت و مقداری آب و غذا برای مار بچه ورد. مار بچه بعد از خوردن غذا به کچل گفت حالا حالا میدونی میخوام چیکار کنم کچل گفت نه میخای چیکار کنی بچه مار گفت من پسر پادشاه مارها هستم شش ماهه که اون مرد منو گرفته و توی این صندوق زندونی کرد پدرم یعنی پادشاه مارها قسم یاد کرده هر آدمی رو ببینه اون قدر اونو نیش بزنه تا بمیره حالا میدونی مم... چیکار باید بکنی؟ کچل با ناراتی گفت نه بچه مار گفت آه. مقداری آب و غذا توی صندوق بذار و بعد در اونو قفل کن و بذار روی سر تو از کوه شاماران برو بالا من از توی صندوق مواظب به برو بالا هر قدر مار دیدی ندرس اونا کاری با تو ندارن وقتی به قلی کوه رسیدی اون وقت مار بزرگی برای زدن به طرف تو میاد تو باید زود منو زمین بذاری و در صندوقو باز کنی کچل پرسید خب اون وقت چی میشه چی میشه اون وقت بچه یه مار گفت هیچ. مار تا چشش به من میافته دیگه کاری به کار تو نداره کچل با نگرانی گفت تو مطمئنی که دیگه کاری به کار من نداره اگه منو نیش زد چی؟ بچه یه مار خندیده گفت <تصفيق> نترس نترس اون با تو کاری نداره تازه من خودم اونجا موازه به کچل گفت خب بچی بچ بکش کار باید بکنم بچه یه مار گفت اون مار بزرگ از تو میپرسه که چی میخوای چه آرزویی داری کچل با حیجان گفت من من خیلی آرزوها دارم مثلا اینکه دیگه خارکنی نکنم و بچه یه مار حرف کچل رو قطع کرد و گفت نه نه تو باید آرزو کنی صفره حضرت سلیمونو داشته باشی کچل با تعجب پرسید سفره حضرت سلیمون بچه مار گفت درست شنیدی سفره حضرت سلیمون پدرم اولش قبول نمیکنه ولی من بهش میگم که تو جون منو نجات دادی و باید پاداش خوبی بهش بدی هر چی میخواد باید براش آماده کنی اون وقت پدرم راضی میشه سفرهی حضرت سلیمون رو به تو بده بعد از اون دیگه تو احتیاجی به خرید قضا نداری هر وقت گرسنت شد سفره رو پهن کن و بگو به عشق حضرت سلیمون اون وقت هر قضایی بخوای برات آماده میشه کچل تمام کارهایی که بچه مار گفته بود انجام داد رفت و رفت تا رسید به یک گله و یه دفعه دید مار بزرگی مثل تیر شاب داره به طرفش مید اولش خیلی ترسید ولی یاد حرفهای بچه مار افتاد و فورا صندوق رو روی زمین گذاشت و درش رو باز کرد. بچه مار از صندوق بیرون اومد وقتی مار بزرگ بچه خودش دید دیگه کاری به کار کچل نداشت بچه ای مار گفت پدرجن این کچلو که میبینی جون منو نجات داده و حالا شما به پاس کمک و خدمتی که به من کرده لازمه بهش پاداشی بدی هرچی خودش بخواد مار بزرگ سرش رو بالا آورد و به کچل خیره شد بعد از اون پرسید خب حالا که چون پسرم رو نجات دادی یه چیزی بخواد تا برای پاداش ب طدیه کنن کچل بلا فاصله گفت من من چیزی نمیخوام فقط سفره حضرت سلیمون رو میخوام همین شاه مارها گفت <تصفح> تو چیزی درخواست کردی که ما نداریم چرا نگفتی گنج، پول، جواهر، ملک چرا سفره <تصفح> حضرت سلیمون ها؟ قبل از اینکه کچل چیزی به زبون بیاره بچه ی مار گفت پدر این مرد جوون منو نجات داده شما باید پاداشی به اون بدین که ارزش این خدمت رو داشته باشه شاید اون علاقهای به گنج و طلا و جواهر نداره بهتر همون سفره حضرت سلیمان رو بهش هدیه کنی پدرجن شاه مارها فکری کرد و بعد دستور داد که سفره و ترکه حضرت سلیمان رو به کچل داد. کچل هم سفره و تکر رو برداشت و خداحافظی کرد و ر! سچل رفت و رفت تا رسید به چشمه آبی و همونجا نشست قدری آب نوشید و با خودش گفت چه کار احمقانه کردم چرا به حرف اون بچه مار گوش دادم آخه این پارچه به چه درد من میخوره کاش یه چیز دیگه از پادشاه مارها گرفته بودم همش اش بچه ماره اما نه بذارت بذار این سفره رو کنم شاید راست بشه و این یه سفری معمولی نباشه کچل بعد سفره رو پنگ کرد و با ترکه به صفره زد و گفت به عشق حضرت سلیمون یه قاب پلو و یه مرغ بریون بده و بعد اون که ببینه چه اتفاقی میافته. هنوز چند لحظه نیزه شد که فوری یه قاب پلو و یه مرغ بریون شده روی سفره مقابل چشمای ناباور کچل آماده شد کچل که خیلی گرسنه بود فرصت رو از دست نداد و شروع کرد به خوردن کچل همینطور که مشغول خوردن بود دید از پشت سر صدایی میاد که رفیق هرچه داری بذار تا منم بیام کچل سر برگردوند دید در ویش قرمدری داره بود نزدیک میشه کچل لبخندی زده گفت بفرما. درویش هم که سخت گرسنه بود شروع کرد بخوردن بعد از اینکه حسابی سی شد نگاهی به اطراف انداخت و از کچل پرسید ای کچل من اینجا نه آتشی میبینم نه وسایل پخت و پس پس این غذای گرم چجوری آماده شده کچل خنده ای کرد و گفت <تصفيق> درسته درویش درسته اینجا آتشی در کار نیست این غذای گرم از سفره حضرت سلیمون اومده بعد ماجرا رو برای درویش تعریف کرد درویش لبخندی زده و گفت ها <تصفيق> تو پسر خوش هستی هم به اون بچه مار کمک کردی و هم به من خوراک و قضا دادی من بابت تشکر عصای خودم میدم به تو البته بگم این عصای عصای معمولی نیستا اگه تموم دنیا دشمنت باشه همین که به این اصا بگی به عشق حضرت سلیمون عصا فورا تبدیل به یه اجدها میشه و همه دشمنانت رو میخوره پسر کچل با ناباوری نگاهی به اصای درویش انداخت و به درویش گفت تو تو واقعا درویش میخوای اصات رو بدی به من؟ درویش گفت چرا که نه پسر بیا مال تو و اصا رو داد به کچل از اونجا دور شد کچل صفره حضرت سلیمون و اسای درویش رو برداشت و براه افتاد هنوز چند دقیقه ای راه نرفته بود که چند تا دزد اونو معاظره کردند و غصتاشن هرچی به امروه داره قارت کنن. کچل که کمی ترسیده بود آهسته به اسایی درویش گفت اسا به عشق حضرت سلیمون گردن این رو بزن. در عرض چند لحظه اسا مثل یک اجداها به جون دزدا افتاد و اونا رو له لبرده کرد. دزدا با آه و نالو و درد خودشون رو از اونجا دور کردن کچل هم خوشحال به راه خودش ادامه میداد رفت و رفت تا به خونش رسید دم درک رسید چشش به یه انگشتری پرنگین و زیبا افتاد کچل لحظه ایستاد و به انگشتری خیره شد بعد خم شد و انگشتر رو برداشت و اون کرد به انگشتش این دفعه سه سیاه زنگی در مقابلش ظاهر شدن کشل فریاد زد آخ خدای من اینا دیگه کی هستند سه سیاه زنگی صدا گفتن ما غلام حضرت سلیمونیم هر کسی این انگشتر رو توی انگشتش کنه ما حاضر میشیم و هر امری داشته باشه براش انجام میدیم خب حالا شما چه امری دارید؟ کچل آهی کشید و گفت آه هیچی آه، هیچ فعلا هیچ آرزوی ندارم خلاصه کچل صاحب قدرت و ثروت بیحد و حسابی شد دست از خارکنی برداشت و هر وقت آرزویی داشت فورا در آورده ازانه انگشتر حضرت سلیمون رو براتون نقل کردم برگرفت از کتاب افسانه های مردم ایران انتخاب و گردآوری جمله فراهانی زندیاد استاد ابوالقاسم انجوی شیرازی در مقدمه کتاب قصه‌های ایرانی چنین نوشته آدمی قصه را دوست دارد با قصه زیسته و میزید و خواهد زیست قصه مانند خواب دیدن است. با زندگی پیوستگی و شباهت دارد اما خود زندگی نیست قصه را جاذبهای است که در همه دورههای عمر از کودکی تا پیری آدمی را به سوی خود میکشد چه هنگامی که آن را از مادر خود میشنویم و به جهان رؤیاها فرو میرویم و چه هنگامی که شهرزاد شیرین سخن لب به داستان میگشاید ازار افثان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله پور ویراستار الهام اشجر اجرا مهران دوستی صدابردار فاطمه گنجلی یه کننده زهرا بد لازاوه تا افسانی دیگر بدرود